فصل 21. چندی بعد عیسی در کنار دریای تبریه بار دیگر خود را به شاگردان ظاهر ساخت. ظاهر شدن او این طور بود: شمعون پتروس و تومای ملقب به قلو و نتنائیل که اهل قانای جلیل بود و دو پسر زبدی و دو شاگرد دیگر در آنجا بودند. شمعون پتروس به آنها گفت من میخواهم به ماهیگیری بروم آنها گفتند ما هم با تو میاییم پس آنها به راه افتادند سوار قایقی شدند اما در آن شب چیزی صید نکردن وقتی صبح شد عیسی در ساحل ایستاده بود ولی شاگردان او را نشناختند او به آنها گفت دوستان چیزی گرفتید آنها جواب دادند خیر عیسی به آنها گفت تور را به طرف راست قایق در آنجا ماهی خواهید یافت، آنها همین کار را کردن و آنقدر ماهی گرفتند که نتوانستند تور را به داخل قایق پس پسان شاگردی که عیسی او را دوست میداشت به پتروس گفت این خداوند است، وقتی شمون پتروس که برهنه بود این را شنید، لباسش را به خود پیچید و به داخل آب پرید. بقیه شاگردان با قایق به طرف خشکی آمدند و تور پر از ماهی را به دنبال خود می‌کشیدند. زیرا از خشکی فقط یکصد متر دور بودند. وقتی به خشکی رسیدند، در آنجا آتشی دیدند که ماهی روی آن قرار داشت و با مقداری نان آماده بود. عیسی با آنها گفت: مقداری از ماهیهایی را که الان گرفتید بیاورید. شمعون پتروس به طرف قایق رفت و توری را که از سه ماهی بزرگ پر بود به خشکی کشید و با وجود آن همه ماهی تور پاره نشد عیسی با آنها گفت بیایید سبحانه بخورید هیچ یک از شاگردان جرأت نکرد از او بپرسد تو کیستی آنها میدانستند که او خداوند است پس عیسی پیش آمد نان را برداشت و به آنان داد و ماهی را نیز همینطور طور این سومین باری بود که عیسی پس از رستاخیز از مردگان به شاگردانش ظاهر شد بعد از صبحانه عیسی به شمعون پتروس گفت ای شمعون پسر یونا آیا مرا بیش از اینها محبت می نمایی؟ پتروس جواب داد آری ای خداوند تو میدانی که تو را دوست دارم عیسی گفت پس به برهای من خوراک بده بار دوم پرسید ای شمعون پسر یونا آیا مرا محبت مینمایی؟ پتروس پاسخ داد ای خداوند تو میدانی که تو را دوست دارم عیسی به او گفت پس از گوسفندان من پاسداری کن سومین بار عیسی از او پرسید ای شمعون پسر یونا آیا مرا دوست داری پتروس از اینکه بار سوم از او پرسید آیا مرا دوست داری آزرد خاطر شده گفت خداوندا تو از همه چیز اطلاع داری تو می دانی که را دوست دارم. ایسا گفت گوسفندان مرا خوراک بده. در حقیقت به تو می گویم در وقتی که جوان بودی کمر خدا می بستی و به هر جا که می خواستی می رفتی. ولی وقتی پیر بشوی دستهایت را دراز خواهی کرد و دیگران تو را خواهند بست و به جایی که نمی خواهی خواهند برد. به این وسیل ایسا اشاره به نوع مرگی نمود که پتروس میبایست برای جلال خدا متحمل شود و بعد به او گفت به دنبال من بیا. پتروس به اطراف نگاه کرد و دید آن شاگردی که عیسی او را دوست میداش از عقب او میآید یعنی همان شاگردی که در وقت شام پهلوی عیسی نشسته و از او پرسیده بود خداوندا کیست آن کس که تو را تسلیم خواهد کرد؟ وقتی پتروس چشمش به آن شاگرد افتاد از ایسا پرسید، خداوندا عاقبت او چه خواهد بود؟ ایسا به او گفت، اگر میل من این باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا. این گفته ی ای ایسا در میان برادران پیچید و همه تصور کردند که آن شاگرد نخواهد مرد، ولی در واقع ایسا نگفت که او نخواهد مرد. او فقط گفته بود اگر میل منی باشد که تا وقت آمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد؟ و این همان شاگردی است که این چیزها را نوشته و به درستی آنها شهادت می دهد و ما می دانیم که شهادت او راست است. البته عیسی کارهای بسیار دیگری هم انجام داد که اگر جزیات آنها به تفصیل نوشته شود تصور می تمام دنیا هم، گنجایش کتابهایی را که نوشته می‌شد نمی‌داشت